اصل نهام آن شب نتوانستم بخوابم در آتاق قوطی که دراز کشیدم و به سخف چشم دخدم و تلاش کردم با دقت تمام دو ماه گذشته را و اساس آن چکنن میدانستم بازسازی باستازی کنم گوی همه چیز تغییر کرده بود تکه تکه شده و در جای دیگر آرام گرفته بود به غالبی تبدیل شده بود که من شناختی از آن نداشتم حس می کردم فریب خوردم شریک جرم احمقی که خبر از چیزی ندارد. لابد در دل به من میخندیدن که تلاش میکردم به فیل سبزیجات بدهم و موهایش را کوتاه کنم. کارهای کوچکی که حالش را کمی بهتر میکرد. چه بود. بارها و بارها حرفهایی را که شنیده بودم در ذهنم مرور کردم. میخواستم جور دیگری تفسیرش کنم. تلاش می کردم خودم را متقاعد کنم حرفهایشان را بد متوجه شدم. اما دیگنیتاس جایی نبود که آدم همین طوری آنجا برود. نمی توانستم باور کنم که کامیلا ترینر چنین کاری را با پسرش بکند. بله فهمیده بودم وقتی می آید کمی معذب است و سرسنگین. تصورش را هم نمی توانستم بکنم که به عنوان مادر ویل را ناز و نوازش کند. آنطوری که مادر ما می کرد. با همهی وجود و شور و شوق فراوان طوری که از دستش فرار میکردیم صادقانه بگویم همیشه فکر میکردم پولدارها هم با بچه هایشان همینطور هستند تازگی رومان عشق در فضای سرد را از کتابخانه فیل برداشته و خوانده بودم اما چطور ممکن بود یک مادر فعالانه و ارادی در مرگ پسرش نقش داشته باشد حالا که جریان را بازنگری میکردم میدیدم رفتارش حتی سردتر هم به نظر میرسد. کارهایش نیتهای خوبی در پس خود نداشتند. از دستش عصبانی بودم، و از دست ویل. عصبانی بودم که مرا درگیر ظاهر سازی کردند. عصبانی بودم که چرا این همه مدت تلاش کردم آرامشش را فراهم کنم، خوشحالش کنم. بعد وقتی خشمم فروکش کرد، احساس غم کردم. لرزش صدای کامیلا ترینر وقتی داشت جورجینا را آرام می کرد به یادم آمد. واقعا دلم برایش می زورد. در موقعیت دشواری قرار دارد. با این همه وحشت سر و پای وجودم را فرا گرفت. چیزهایی که فهمیده بودم موجب نگرانی شده بودند. چطور می شد با علم به این که داری به روز مرگت نزدیک می شوی روزها را یکی یکی بگذرنی؟ چطور ممکن بود این مردی که پوستش را آن روز صبح زیر دستم لمس کردم، گرم و زنده، تصمیم بگیرد که خودش را نابود کند؟ چطور ممکن بود که این پوست با رضایت همه چهار ماه دیگر زیر خاک شروع به پوسیدن بکند؟ چیزی نبود که به کسی بگویم، کار درستی نبود. حالا من در راز خانواده ی ترینر شریک بودم. نتوانستم شام بخورم. روی تخت دراز کشیدم، افکارم چنان در مغزم میپیچید و همه ی ذهنم را پر کرده بود که دیگر برایم پیر قابل تحمل شده بود. ساعت هشتانیم برگشتم طبقه پایین، ساکت کنار پدر بزرگ که مطمئن بودم تنها عضو خانواده است که باز جوی نمی کند، نشستم و تلویزیون تماشا کردم. روی مبل محبوبش نشسته بود و از پشت اینک به صفحه تلویزیون زده بود. معلوم نبود اصلا حواسش به تلویزیون هست یا نه شاید ذهنش جای دیگر بود مامی با لیوان چای کنارم نشست و گفت عزیزم مطمئنی چیزی نمیخوری خانواده ما ادعا میکرد با یک لیوان چای میتواند همه چیز را بین خود حل و فصل کند گفتم نه ممنون گرسنه نیستم متوجه نگاهش به پدرم شدم. می دانستم بعدن مهرمانه بلند خواهد شد که خانواده ترینر کار زیادی از من می کشند و پرستاری از یک معلول بار زیادی به آدم تحمیل می کند. مطمئن بودم خودشان را سرزنش می که تشفیقم کردند سر این کار بروم. آخر سر هم کار به جایی میکشید که مطمئن می شدند درست فکر کردند روز بعد در اوج تعجب دیدم ویل از لاک خودش بیرون آمده است. به طرز عجیبی پر حرف و یک دنده شده بود. همش دنبال دعوا بود. خیلی حرف می زد. یادم نمی آمد دیده باشم اینطور طور براجی کند. تمام مدت می خواست جر و بحث را بینده وقتی می دید پانه می هم دلخور می شد. این کاری لعنتی کی تموم میشه. داشتم اتاق نشیمن را نظافت می کردم. سرم را بالا گرفتم و از بالای کوسنهای قلومبه کاناپه نگاهش کردم. چی؟ سرم ببین نیمه کار مونده شبیه یکی از اون یتیمهای دوره ویکتوریا شدم سرش را برگرداند تا هنر خودم را بهتر ببینم گفت نکن یکی از اون مادل موهای مورد پسندته میخوای بیشتر کوتاه کنم آره بدم نمیاد چه خوب شده که دیگه کسی فکر نمیکنه از تیمارستان فرار کردم. بی آنکه حرفی بزنم هلو و قیچ آوردم. گفت: "لاوت نیتن حالا با دومش گردو میشکونه که قیافم شبیه آدما شده." البته خودش بعد اصلاح اسلا بهم گفت عادی شده. حالا هر روز باید اصلاح کنم. گفتم: "ا؟ اشکاری که نداره ها؟ آخر افتوام مجبورم با تحریش کنار بیام." قادر به حرف زدم با او نبودم. حتی نمیتوانستم به چشمانش نگاه کنم. جدا سخت بود. بعد جور احساس میکردم به من خیانت کرده است. کلارک؟ ها. امروز خیلی ساکتی. زبونتون موش خورده؟ ببخشید. مربوط به مرد دونده میشه؟ چیکار میکنه؟ نرفته که؟ نه؟ نه تیکه ای از موی نرمش را بین انگشته اشاره و میانی گرفتم و تیغه ی قیچی را جلو بردم تا اضافه اش را بزنم تیکه مو همینطور توی دستم بود چطور این کارا می کردند؟ با آمپول، با دارو یا اینکه توی اتاقی پر از تیغ تنها میگذاشتند خسته به نظر می رسی. اولش که اومدی حوصله حرف زدن نداشتم ولی حالا می به باید در بود آقون هستی چطور میتوانستند به کسی که فقط قادر نبود دست و پایش را حرکت دهد کمک کنند خودش را بکشد؟ دیدم دارم به مچ دستش نگاه می کنم که اغلب با آستین بلند پوشانده می شد. تا هفته ها فکر می کردم لابد بیشتر از ما سردش می شود. یک فری به دیگر. کلارک. بله. خوشحال بودم که پشت سرش ایست دادم. دلم نمی خواست صورتم را ببیند. مکسی کرد، پوست پشت گردنش که مو هم داشت به نسبت رنگ پریده تر از بقیه جاها بود و سفید و به طرز عجیبی حساس بود گوش کن، به خاطر خواهرم متاسفم درسته که خیلی خیلی آتیشی بود، اما حق نداشت بیادبی کنه گاهی زیادی روک میشه خودش خبر نداره که چقدر بدون قصد و غرض دیگرونو میرنجونه مکسی کرد بعد ادامه داد بگمونم برای همینه که زندگی تو استرالیا رو دوست داره منظورت اینه که اونجا همه به هم راستشو میگن چی؟ هیچی؟ لطفا سر تو بالا بگیر به کردم و شانه زدم طب به اصول پیشرفتم تا اینکه کل سرش اصلاح شد زمین هم بار از مو شده آخر وقت دیگر تصمیمم را گرفته بودم. وقتی ویل به درش سرگرم تماشای تلویزیون بود، یک برگه کاغذ از پرینتر برداشتم. از گوزهی کنار پنجرهی آشپزخانه، خودکاری آوردم و آنچه در ذهن داشتم نوشتم. کاغذ را تا کردم. پاکتی پیدا کردم و کاغذ را داخلش گذاشتم. اسم مادرش را روی پاکت نوشتم و بعد روی میز آشپسخانه گذاشتم. وقتی غروب خانه را ترک می کردم، ویل و پدرش داشتن با هم حرف می زدند. ویل واقعا می خندید. توی راه رو ایستادم و گوش دادم. کیفم روی شانه بود. به چه می خندید؟ با توجه به اینکه فقط چند ماه دیگر به زندگیش پایان می داد، چه چیزی موجب شادیش شده بود. در آستانه در در ایستادم و گفتم من دارم میرم بعد راه افتادم. کلارک اما من در را پشت سرم بسته بودم. تمام فاصله کوتاه تا خانه را همینطور که سوار اتوبوس بودم با خودم فکر کردم که به خانواده‌ام چه بگویم. حتما عصبانی می‌شوند وقتی بفهمند کار نان و آبدارم را رها کردم. دل مادرم بعد از شوک اولیه به درد نیامد و از من دفاع می‌کرد. می‌گفت که زحمتش زیاد بود. پدرم احتمالا میپرسید که چرا نمیتوانم مثل خواهرم باشم. حرفی که اغلب میزد. در صورتی که خواهرم تنها کسی بود که زندگیش را با حاملگیش خراب کرد و روی حمایت مالی خانواده حساب میکرد و پرستاری از بچه‌اش را به دوش خانواده انداخته بود. توی خانه ما کسی جرأت اشاره به این موضوع را نداشت. چون بر اساس باور مادرم اعتراض به وجود توماس ناشکری محسوب میشد. به اعتقاد او بچه ها همه برکت خداوند هستند حتی آنهایی که ناخواسته هستند و حضورشان در خانه باعث میشود افرادی که میتوانند سر کار بروند و پول درآورند خانه نشین شوند. بیره ممکن بود که بتوانم واقعیت را با آنها بگویم. گرچه هیچ تعهدی به ویل و خانوادهش نداشتم اما دلم نمیخواست موضوع دهان به دهان بگردد. دوست نداشتم آنگوش نما شود و همسایههای فضولشان خیره به او نگاه کنند. با این افکار از اتوبوس پیاده شدم و از سر از زیدی پایین رفتم. وقتی به نفس خیابانمان رسیدم صدای فریادی شنیدم که در هوا پیچید. تازه صدای فریاد از ذهنم رفته بود که جمعیت کوچکی نزدیک خانهمان دیدم. قدم هایم را تند کردم. ترسیده بودم مبادا اتفاقی افتاده باشد. پدر و مادرم را در هشتی خانه دیدم که بالا را نگاه می فهمیدم از خانه نیست خیالم راحت شد. جنگ آخر از سری جنگ های زن و بود. گرچه ریچار شوهر چندان وفاداری نبود. ولی زیاد هم سر زبان مردم محل نبود. حالا هم این زنش بود که داشت قضاوتش می کرد و نمایشی شیره در باغچه جلویی خانهشان به اجرا گذاشته بود. احمق فرضم کردی بلوز تو تنش بود همونی که تقلدت برات کازو گرفتم دیمپانا پانا اینطور نیست که تو فکر میکنی رفتم تخم مرغای اسکاچ لعنتی و وسط بخرم اونجا بود بروزه تم تنش بود تو اوج بی شرمی از تخم مرغ اسکاچم بدم اومد قدمهایم را آهسته کردم راهم را به زور از میان جمعیت باز کردم و خودم را به در خانه رساندم. چشمم به ریچارد بود که جا خالی داده بود تا دستگاه دیویدی که به طرفش نشانه رفته بود به سرش نخورد. بعد هم کفش به طرفش پرتاب شد. از کی دارن دوام کنن؟ مادرم که پیشبندش صاف و مرتب دور کمرش بسته بود دست به سینه ایستاده بود. دستش را بالا گرفت و به ساعت مچیش نگاه کرد. سیروب حتما شده. برنات به نظرت سروب شده؟ بستگی کی از کی حساب کنیم از وقتی لباساش رو پرد کرد یا وقتی که ریچارد اومد و اینا رو دید؟ از وقتی اومد؟ پدرم گفت پس نیم بیشتر نیست اما فقط پونزه دقیقه اول چیزای خوبی از پنجره پرد کرد بیرون بابات میگه اگه بازم چیزی به طرفش پرت کنه میخواد پیشنهاد بده به ریچاردو ریچارد رو پرد کنه ازدهام همسایی ها بیشتر شده بود دین پاناگیریشم قصد آمدن نداشت. اگر چیزی او را به ادامه کار تشویق می‌کرد همان ازدهام جمعیت بود. رگباری از مجله از پنجره پرت شد بیرون. مجلهای مزخرف تام می‌تونی بهش بدی. جمعیت هورا کشید. زن ادامه داد. ببین دوست داره ببینه که نصف بعد از بر شنبه رو توی توالت نشستی و اینا رو خونی؟ رفت داخل خانه. بعد دوباره جلوی پنجره ظاهر شد. سبد لباس چرک را پرت کرد. بقیه چمن هم پر شد اینم لباس های کثیفت ببین وقتی داره هر روزی رو میشوره فک فکر میکنه چه آدمت چی میگن احمقی هستی وقتی سبد روی چمن افتاد ریچارد شروع کرد به جمع کردن رو به پنجره فریاد زد اما در میان آن همه حیاهو و سووت را معلوم نبود چه میگوید برخلاف خلاف سیدی ها و بازی های که پرطرفدار بودند کسی حرکتی برای لباس چرکهایش نکرد گروپ. وقتی اش به زمین اصابت کرد ادهه هیس گفتند ریچارد سرش را بالا گرفت ای سلیته تو ترتیبونم وزیه لوچ سر و مریض و توی درمیرگاه دادی و من سلیته شدم مادرم به طرف پدرم برگشت برنارد چای میخوای؟ البته حالا شاید کمی سرد شده باشه. پدرم یک لحظه هم از خانه همسایه چشم بر ممنون من عزیزم خیلی هم می چسبه همین که مادرم وارد خانه شد من اتومبیل را دیدم چنان غیر منتظره که در نگاه اول نشناختم. مرسدس سرمه خانم ترینر بود اتومبیل متوقف شد و خانوم ترینر به صحنه پیاده رو چشم دوخت پیش از آن که پیاده شود لحظه ای مردد ماند، ایستاد و به خانه ها نگاه کرد. شاید داشت پلاک خانه ها را می‌دید. بعد چشمش به من افتاد. از هشتی خانه بیرون آمدم و پیش از آن که پدرم بپرسد کجا می روم وارد خیابان شدم. خانم ترینر آن طرف جمعیت ایستاد، طوری به حیهو نگاه می‌کرد. که انگار ملک ماریان توانت داشت به مشتی دهاتی آشوبگر نگاه می‌کرد. گفتم، دعوای خانوادگی؟ به دور دست نگاه کرد، گویی یک جورایی دست پاچه شده بود که من دیدم دارد به دعوا نگاه می کند آره می بینم، با معیار روانشناسا جور در باید برم پیش مشاور خانواده دامن پشمی شیک، گردم بند و موهایش که هزینهی زیادی برایش شده بود، آنقدر بودند که او را از اهالی محله ما با آن شلوارهای گرم کن و لباسهای پارچه ارزان و برق برقی فروشگاه های متمایز کند. خوشک و جدی به نظر می رسید. حتی بدتر از صبحی که به خانه آمد و من را دید که در اتاق ویل خوابیدم. ته ذهنم می از دست کامیلا ترینر در نخواهم رفت. نمیدونم میتونیم با هم صحبتی بکنیم یا نه؟ از سر و صدای زیاد مجبور شده بود صدایش را بلند کند. نگاهی به جمعیت کردم. بعد به پشت سرم، به خانه من. اصلا تصورش را هم نمی توانستم بکنم که خانم ترینر را به خانه ببرم. از بازی توماس همه جا ولو بود و پدر بزرگ خورناس کشان تلویزیون تماشا می کرد. مامی به خاطر بوی بد جورابهای بابا اسپری خوشبکننده زده بود. توماس هم بود. حالا که فرد قریبه ای می دید، یک سره زیر لب زمزمه کند سلیته. وقت خوبی نیست. شاید بشه توی ماشین حرف بزنیم. ببین، فقط پنج دقیقه. لویزم مطمئنن به گردانت حق دارم. وقتی سوار اتومبیلش شدم، یکی دوتا از همسایه‌ها به طرفم هم نگاه کردند. خوشبختانه، خانواده گریشم خبر داغ آن شب بودند. وگرنه من موضوع صحبت میشدم. در محله ما سوار شدن به یک اتومبیل گران قیمت به این معنا بود که فوتبالیست تور زده ای یا پلیس های لباس شخصی دست گیرت در اتومبیل آرام و با متانت بسته شد. حالا دیگر هیچ صدایی به گوش نمیرسید. اتومبیل بوی چرم میداد به غیر از من و خانم ترینر هیچ چیز دیگری در آن نبود نه خبری از پوست شکلات بود. نگل و جا جامانده. خوشبوکننده هم نزده بودند تا بوی کارتان شیری را که سه ماه قبل ریخته بود بپوشانند. شروع به حرف زدن کرد. طوری که گویی با کسی در روبرویش حرف می زند. بگم تو ویل خوب با هم تا می کنید. چیزی نگفتم. ادامه داد. حقوقت کمه؟ نه. به وقت نهار بیشتری نیاز داری؟ خودم می دونم میتونم می تونم از نیتون بپرسم شاید نه مشکل پوله نه ساعت کاری پس چی؟ من واقعا دلم نمی خواهد. ببین نمیشه که نقافل یاد داشتی به من بدی و انتظار نداشته باشی حتی دلیلش رو بپرسم نفس عمیقی کشیدم من حرفاتون شنیدم حرفای شما دخترتون دیشب و نمیخوام، نمیخوام نخشی تو اون داشته باشم. ساکت و خاموش نشست. حالا آقای گریشم زور میزد راهش را باز کند و از در ورودی وارد خانه شود. زنش هم سرگرم بود و هرچه گیرش میامد از پنجره پرت میکرد بیرون. چیزهایی که عین موشک پرتاب میشدند. دستمال توالت، جعبه های نوار بهداشتی گرس دستشوی شامپو پیدا بود حالا توی همام است خانوم ترینر با لحن ملایه می گفت: لطفا نرو فیل با تو راحته مدتها بود اینطور آرامش نداشت من واقعا برامون سخته که کس دیگه ای جای تو بیاریم اما شما شما که میخواد به اون جایی وحشتناک ببریدش، جایی که آدم رو بر خودکشی میرن، دیگنیتاس نه، قصدم اینه که هر کاری از دستم برمیاد بکنم تا از این کار منصرفش کنم. مثلا چه کاری؟ دعا؟ خانم ترینر نگاهی به من کرد که مادرم به آن میگفت چشم بره. حتما تا حالا متوجه شدی که اگه ویل تصمیم بگیره کاری بکنه هیچ کس نمیتونه مانعش بشه گفتم میدونم من در اصل اینجا هستم تا مواظه باشم دوباره دست به کاری نزنه کاری که شش ماه قبل انجام داد درسته؟ نه درست نیست برای همین تازه کار بودنم برای تو مهم نبود من فکر کردم تو سرزنده و شاد هستی با بقیه فرق داری به پرستارها شبیه نبودی رفتارت مثل بقیه نبود فکر کردم فکر کردم میتونی اونو سر حال بیاری و آوردی لویزا تو سر حالش آوردی دیروز وقتی دیدم اون ریش لعنتی رو زد تو یکی از معدود آدمهای هستی که میتونی رامش کنی فکر کنید نباید به من بگید در اصل استخدامم کردید که مواظب باشم دوباره خودکشی نکنه. غیر از اینه؟ نفس عمیقی که کامیلا ترینر کشید، از کسی برخواسته میشد که به اجبار می‌خواست چیزی را معدبانه برای یک گلدن توضیح بدهد. برایم عجیب بود، آیا میدانست طرفایش در طرف مقابل احساس حماقت ایجاد می کند؟ آیا از روی عمد انجام میداد؟ فکر نمی کردم از من براید که با دیگران طوری رفتار کنم که از کنند احمق هستند. شاید اولش که تو رو دیدیم این طور بود. اما حالا مطمئن هستم ویل پای قولش مییسته و این شش ماه رو سبر می کنه. به من قول شش ماهه داده. لویزم ما به این زمان نیاز داریم. فرصتی هست که می تونیم این فکر رو به سرش بندازیم که راه های دیگه هم وجود داره. امیدوار بودم این فکر به ذهنش برسه که راههایی برای لذت بردن از زندگی وجود داره. حتی وقتی هم این سبک زندگی بهش تحمیل شده باشه. همش دروغ. شما به من دروغ گفتید. همتون به هم دروغ موکید. به نظر نمی حرفم طرفم را شنیده باشد. صورتش را به طرفم برگردند. دست چکی از کیفش بیرون آورد. خودکار در دستش آماده بود. گوش کن. چقدر میخوایی؟ حقوقتو دوبرا برمیکنم. فقط بگو چقدر میخوای. من پولتونو نمیخوام. ماشین، مقرری، پاداش. نه. پس چی؟ چیکار میتونم بکنم که تغییر عقیده بدی؟ مذرت میخوام. من فقط... به بیرون چشم دوختم. دستش را جلو آورد و روی دستم گذاشت. عجیب بود. انگار انباجی از آن ساته میشد. هر دو با زدیم. گفت. دوشیسه کلارک. شما قرار داد امضا کردید. متعهد شدید که شش ماه کار کنید. در صورتی که طبق محاسبه من فقط دو ماه کار کردید. به زبون خوش از شما میخوام به تعهدتون عمل کنید. آهنگی صدایش سرد و خشک شده بود. سرم را پایین انداختم و به دستش نگاه کردم. دیدم که می لرزد. آببدانهش را غور داد. خواهش میکنم پدر و مادرم توی هشتی ایستاده بودند و نگاه می کردندند میدیدمشان لیوان دستهدار قهوه دستشان بود فقط این دو نفر بودند که صورتشان به طرف نمایش همسایه بغلی نبود وقتی متوجه شدند که من آنها را دیدم با دست پاچگی صورتشان را برگرداندند. پدرم را دیدم. که دن پایی پارچه پر از لکه های رنگ پوشیده است. دستگیره در را گرفتم. خانم ترینه. واقعا نمیتونم بشینم و تماشا کنم. غیراتی نمیخوام نخشی دوش داشته باشم. خوب در موردش فکر کن. فردا جمعه مقدسه. اگه به زمان نیاز داری میتونم به ویل بگم مشغل این داریم. تعطیل رسمی آخر هفته رو به خودت فرصت بده. اما لطفاً برگرد. برگرد و بهش کمک کن. بیان که پشت سرم را نگاه کنم به داخل خانه برگشتم. نشستم توی اتاق نشیمن و به تلویزیون چشم دوختم پدر و مادرم دنبالم وارد اتاق شدند. نگاهی به هم انداختند. می میکردن توجهی به من ندارد تقریبا ده دقیقه بعد صدای اتومبیل خانم ترین را شنیدم کرک کردم این دقیقه بعد از بازگشت به خانه مخابرم ظاهر شد پایش رو محکم کوبید و وزبه بالا آمده بود در اتاق را باز کرد. گفتم آره بیه تو روی تخت دراز کشیده و پاهایم را به روی دیوار گذاشته و به سقف چشم دوخته بودم جراب شلواری و شلوارک آبی پولک دوزی پوشیده بودم که حالا به طرز بدی دور پایم پیچیده بود کاترینا در چارچوب در ایستاد. درسته؟ دین‌فانه‌گیریشم بالاخره شوهر خانم بازش رو با اردنگه انداخت بیرون. خر خودتی. منظورم کارته. خودتو به نفهمی نزن. با شست پا طرح کاغذ دیواری رو دنبال کردم. آره، یادداشت نوشتم و تحویل دادم. میدونم مامی و بابا راضی نیستن. آره، آره هرچی چی میگی درسته. در رو یواش بشه سرش بست. محکم لبه تخت نشست و با تمام قوا شروع به ناسزاگویی کرد. اصلا باورم نمیشه. پایم رو هل داد. دوری که از دیوار سرخورده آمد پایین و افتاد روی تخت. خودم رو صاف کردم. چهرش کبود شد. باورم نمیشه. مامی می پایین پله هاست. بابا خودشو قایم کرده ولی هست. الان چه فکری باید برای پول بکنن؟ خودت خبر داری که بابا همش نگران کاره. لعنتی چرا باید کارو این خوبی رو ول کنی؟ ترینا لطفاً بالای منبر نرو. حوصله سخنرانی ندارم. خب کسی باید اینا رو بهت بگه. هیچ کجا بهت این پولو نمیدن. پد نیست نگاهیم به سوابق کاریش بندازی. فای خدای من. لطفا تظاهر نکن که به خاطر تو خاصایی تو نیست. چی؟ تا وقتی بتونی درست تو بخونی دنبال بلند پروازیت داشی؟ دیگه چه همیتی واسه داره که کار من چیه؟ تا فقط فکر خودتی؟ فقط میخوای کار کنم و خرجی بدم و از بچت مراقبت بشه؟ گن بزنن همتونو. میدانستم زدم به سیم آخر. ولی دست خودم نبود. به هر حال تقصیر خواهرم بود که ما توی چونین هچلی افتاده بودیم. سالها خشم فرو خورده حالا داشت سر ریز می کرد. ما همه باید تن به کارهایی بدیم که ازش متنفریم تا کاترینه کوچولو بتونه دنبال جا خودش بره نه این طور نیست نه نه این توی که ارزه کار کردن نداری پس از نظر تو من ارزه کار کردن ندارم باشه قبول دست بیشتر از حداقل حقوقاست. فقط همین مهمه زندگی همش پول نیست اینو بفهم بله پس لطف کن برو پایین و اینو به مامی و بابا بگو. تو لطفا از پول حرف نزن تا که سالا کفتم تو این خونه نیووردی تو خودت میدونی به خاطر توماسه خواهرم را به طرف در حل دادم یادم نمیاد واقعا آخرین بار که این رفتار را با او داشتم اما در آن لحظه آماده بودم با مشت و لگت به جانش بیفتم میترسیدم اگر بیشتر بماند کار به کتکاری هم بکشد گور گورتو گم کن شیفم شدی فقط گورتو گم کن و تنها بذار در را توی صورت خواهرم محکم به هم زدم. سرانجام وقتی صدای پایش را شنیدم که یواش از پله پایین رفت دلم نمیخواست فکر کنم که الان به پدر و مادرم چه میگوید؟ چطور همهشان این جریان را شاهد دیگری بر بیارزگی من و ناتوانیم در انجام کاری با ارزش ترقی می‌کند؟ اصلا نمیخواستم به سایت کارمند اداره کاریابی فکر کنم. و برایش توضیح بدم که چرا چون این کار نان و آبداری را ویل کردم. نمیخواستم به کارخانه مرغ و جوجه فکر کنم. و اینکه احتمالا هنوز یک لباس کار پلاستیکی و کلاه بهداشتی آنجا هست که اسم من رویش نوشته شده. دوباره روی تخت دراز کشیدم و به ویل فکر کردم. به خشم هش فکر میکردم. به حرف مادرش فکر میکردم که من تنها کسی هستم که میتوانم با او ارتباط برقرار کنم. تلاش کردم به او فکر کنم بیان که سر موضوع ترانه ملهم که شبیه که برف به پنجره می بارید به خنده بیفتم. به پوست گرم و دست و موی نرم یک موجود زنده فکر می کردم. به انسانی که باهوشتر و شوختبتر از من بود اما نمی توانست به آیندهای بهتر از نابودی خودش بچسبد. و در آخر سرم را به بالش فشار دادم و گریه کردم. زندگی من، قمنگیستر و پیچیده تر از آنچه تصور میکردم بود. ای کاش زمان به عقب برمی به آن موقع که تنها دلنگرانیم این بود که آیا من و فرانک به اندازه کافی کهی که چلسی سفارش داده ایم یا نه؟ زربهی به در خورد. فینک کردم. کاترینا <تص> بزن به چاک. معذرت لو. به در سل زدم. صدایش گنگ و خفه انگار دهانش را مقابل سوراخ قفل گذاشته بود گوش کن نوشیدنی اووردم بردم بزا بیام تو تو خدا بگرنم و می صدام و می شنبه. دو تا لیوان نوشیدنی ناب آوردم. خودت که می دونی دوست ندارن ما از این چیزا بخوریم از تخت پایین آمدم و در را باز کردم به صورت اشکالودم نگاه کرد فوری در اتاق را پشت سرش بست گفت باشه حالا بگو واقعا چه اتفاقی افتاده با دقت به خواهرم نگاه کردم قول بده به کسی چیزی نگی حتی به بابا خصوصا مامی بعد همه چیز رو ریختم رو دایره نیاز داشتم با کسی حرف بزن علیهل مختلفی وجود داشت تا من خواهرم را دوست نداشته باشم تا همین چند سال قبل می توانستم فهرست بلند بالایی بنویسم از او متنفر بودم که موهای پرپشت و صافی دارد در صورتی که موهای من اگر به شانه‌ام می رسید شروع به ریزش می کرد دوستش نداشتم چون هر وقت هر حرفی به او می زدم خودش از قبل دانست در تمام طول سالهای مدرسه معلمها اصرار داشتند که با لحنی آرام به من بگویند چقدر او زرنگ است. انگار هوش او عاملی بود که مرا به حاشیه میراند. از او متنفر بودم به این خاطر که من در بیست 26 سالگی هنوز در اتاق قوطی کبریتی زندگی می‌کردم، ولی او با پسرش در بزرگترین اتاق خواب خانه. با این همه هر از گاهی احساس رضایت می‌کردم که خواهرم است. وقتی ماجرا را تعریف کردم، کاترینا وحشت زده نشد و جیغ نکشید. حتی به نظر نمیرسید شکه شده باشد. اصلا هم اصرار نکرد موضوع را به مامی و بابا بگویم. دیگر به من نگفت که اشتباه کردم دست از کارم کشیدم. جرأی مفصل سر کشید. اوه. آره. کارش قانونیه. ظاهرا نمیشه مالش شد. میدونم لنتی اصلا تو کلم نمیره. از موضوع حرف زدیم و نوشیدیم حسیم کردم گونه داغ کرده است. ترینا هیچ دوست ندارم ولش کنم ولی من نمیتونم شریک جرم باشم. میفهمم. به فکر فرو رفته بود. این جور مواقع ریافه متفکرانه به خودش میگرفت دیگران وقتی این قیافه را می دیدند، میکردند و حرفی نمی زدند. بدرم به من می گفت که وقتی داری فکر می کنی، انگار به دستشویی نیاز داری. گفتم <تصفيق> نمی دونم چه غلطی بکنم. سرش را بالا گرفت و نگاهم کرد. یک دفعه باز شد. خیلی راحت، راحت راحت. دوباره لیوان را پر کرد. آه، تمومش کردیم. آره، کاری نداره. گفتی که خیلی پول دارن. درسته؟ ولی من پولشون را نمیخوام. پیشنهاد داد که حقوقم را زیاد کنه. اما موضوعی نیست. خفه مغجون پول رو برای خودت نمیگم. برای خودشون میگم. احتمالا بابت تصادف از بیمه پول کلونی گرفتن. خب به اونا بگو به پول نیاز داری. و این پول خرج خودش کن چهار ما وقت داری هنوز فرصتش هست کاری کنی که ویل تغییر عقیده بده چطور؟ تو فکرشو عوض میکنی گفتی که اهل گردش و تفری بوده درست خب یه چیز کوچیک شروع کن ببرش بیرون هر کار هر جایی که میتونی هر کاری که از دستت برمیاد تا احساس زنده بودن بکنه تا دست از این فکر برداره آجراجوهی، سفر خارجی، شنب و دلفینا، هر کاری، هر کاری که میشه کمکت میکنم. تو کتابونه سری به اینترنت میزنم. میگردم. مطمئن میتونیم کارهای خوبی براش بکنیم. کارهایی که شادش کنه. به او خیره شدم. کاترینا، ها، خودم میدونم. وقتی لبخند زدم، او هم خندی زد. راستی راستی نابغم